شه چهار حالا دیگر همه جای شهر و جلو پاد دوستجان خوب سبز می شود ولی عزیز دلم تو اولین دوستجان من بودی میدانم خوب میفهمی اولین دوستجان بودن چه احساس دلانگیزی در قلب برونزی یا بتونی دوستجان ها شما مجسمه های قدیمی تنها موجودات به درد بخور این شهر هستید راستی دوست جن تیغ تیغی، من یک تکه کیکی کشمشی توی کوله هم دارم. قبلا که کیکی کشمشی خیلی دوست داشتی، هنوز هم دلت می خواهد؟ رو را که می خوری من را هم راهنمایی کن که با این حامد بهداد ورپریده چه کار کنم. یک کار سرکلش بعد از این همه سال توی زندگی من پیدا شده و من را به جاهای دوری برده که فکر می کردم، سالها پیش فراموششان کردم. دوست جان تیغ تیغی مذرت می خواهم. حواسم نیست آیپاد توی گوشم است و صدات را درست نمیشنوم یک الف بچه که بودم می توی سینه جوشکاری شده ی تو می نشستم و صدای نفس کشیدنت را می شنیدم تو از هات برایم می گفتی من میخواستم خواستم تیرهایی را که بهت اصابت کرده بود از تن زخمیت بیرون بکشم ولی زورم نمی رسید یکی دو بار هم از نیما کمک خواستم بعد از کلی اصرار وقتی راضی شد حتی نتوانست یک تیر را هم از بدن تیغتقیت بیرون بکشد. این سامان لعنتی آن شب توی پاساژ گلستان حامد بهداد تر هم شده بود و همانطور که میدانی این برای من مصیبت بسیار جنگو است. شبیه حامد بهداد است که باشد. من میتوانم از هر بوتیکی جان سالم به در ببرم. دوست جان تیغتیقی. که هر روز این همه آدم از جلوی چشمهای پنهانت رد می شوند برای خودت دیگر یک پا روانشناس شده ای پس لطفا همین حالا به من یک مشاوره رایگان بده و تکلیف این بوتیک و حامده بهداد را که دیگر کارشان دارد به جای باریک میکشد روشن کن فیلم بوتیک را دیده ای؟ چه سوال بچگانه ای؟ معلوم است که دوست جان ها نمی سینما بروند و در تاریکی روی سندلی های قرمز بنشینند و خرت خرت چیپس بخورند و با چشم پنهانشان ببینند که چطور توی یک صحنه معرکه حامد بهداد قاچی میکند و میزند شیشه میز پذیرایی خانهش را خورد و خاک شیر میکند بیچاره توی فیلم احساب ندارد و بر خودش مسلط نیست آخ جانه جان جان و تن به قربانت مردی که خوشگل چه است آسیب زدن به لوازم خانگی وقتی توی خیابان این همه دل دخترانه برای شکستن ریخته. دوستجان جان تیختیقی، یک وقت خیال برد ندارد من از این دخترهای فلرتیشیای توی هپروت هستم که سیریش هنرپیشه های معروف میشوند. بر و روی دیوار اتاقشان پسترشان را می و صبحها قبل از مسواک به پستر مذکور سلام می کنند. و شب جمعه ها امامزاد سالح می تا برای پستر مذکور نظر و نیاز کنند. نظر می کنند اگر به وسال هنرپیشه محبوب محبوبشان رسیدن دختر خوبی بشوند و کاری کنند که هنرپیشه محبوبشان سال بعد برود روی سن ازکار. نه عزیز جن، از این خبرها نیست. من برای خودم عشق جداگانه دارم. منتها این سامان خیلی شبیه حامد بهداد است، مخصوصا وقتی اخم می کند. بوتیک هم خدای فیلم بدی نیست. از آن فیلمهایی است که هر کسی گوشه ای از وجود وارفتهاش را توی گوشه ای از وجود وارفته ای فیلم پیدا می کند. دلوپی داری که یکی کشمشیت را میلوبانی ها. نپرد توی گلود حوض کردن بیایم کنج سینه میله گردی جوشکاری شدت بنشنم و یاد روزهای گذشته بیفتم. دادش نیما. اما من دیگر بزرگ شدم. حتی شک دارم با این قد و قواره مثل قدیم ها توی سینه جا بشوم. دوستجان های انتظایی مجسمه. دوستجان لالا همیشه خواب است. دوستجان بنگ بنگ همیشه یک تفنگ گنده دستش گرفته. تا به حال بهت گفته بودم هفته چند بار می روم پیش دوستجان های انتظاری توی مسیرم است. آخرین بار با استاد نجات رفتم. چهار شب پیش وقتی که از هتل البرز برمیگشتیم من کم کم باید بروم دوست جان. چیزی به ساعت هفت نمانده و سامان لابد توی کافه فرنگ نیاوران منتظرم است. یک رو بیشتر وقت ندارم و باید هم به دوست جان لوله لوله پایین فواره و دوست جان پولک پولک حوز کوچک بالای پارک بزنم. یادت که هست؟ این را نیما روی شما گذشته بود. خودمانیم، نیما همان موقعها کلی زوق و شوق هنری داشت. مثل حالا نبود که هران نتواند از بر تشخیص بدهد و معلوم نباشد توی کدام سوراخ خراب شده قایم شده و توی بندرعباس یا چه میدانم دبی یا کراچی چه غلطی میکند. نیما روی همه شما اسم میگذاشت و من عین اسمهای های او را تقلید میکردم. تقلید کار میمونه. من کف دستم را جلوی صورت نیما میگرفتم. آینه آینه به خودت برگش خودت میمونی. نیما زبانش را بیرون میآورد نور خانم با سنگ خداییم زدم آینت را شکستم. دیگر هم با این مجسمه ها بازی نمیکنم اگر امروز همه چیز خوب پیش برود و من بتوانم حامد بهداد یعنی جناب سامان را از خودم بکنم همین فردا با سامان میروم پارک لاله. دزدکی میروم باغ مجسمه که گله به گله تویش دوست جان سبز شده. از سامان می خواهم وقتی دست دور گردن دوستجان لالا و دوستجان بنگ, بنگ انداختهام با دوربینش از هم عکس بگیرد سامان شاگرد حامد نجات است و لابد عکاس قابلی است سانچو پشت ها قایم میشویم تا حراست موزه و پارک نتوانند پیدامان کنند و برایمان سوت بزنند سامان عین خبرنگارها تونتون از من با فیگورهای مختلف عکس میگیرد دست دور گردن هر دوستچنی بیاندازم دوستجان خنده ملیح می و با دو خنده گشاد ملیح وارد عکس دیجیتال سامان میشویم اسلایدها دوستجانهای انتظای خندهشان هم تباً انتظایی است خوبی آنها هم مثل تو این است که معلوم نیست جای واقعی دهان یا چشم هاشان کجاست هر جایی بدنشان در آن واحد میتواند دهان یا گوش یا پاشان باشد یک لحظه خیال میکنی دست انداخته ای دور گردنشان غافل از اینکه که کف پاشان را بغل کرده ای. هوا سرد است. کاشکی میتوانستم شال گردنم را دور گردن زخم خورده ات بیاندازم. اما سرما برای زخم خوب است و تا حالا همیشه تو توی زمستانها بهتر میشده و زخمات خوب میشدند. برایم دعا کن سامان امشب مهربان و دستیافتنی باشد. و طوری تا بکند که بتوانم بعد از چهار سال قفل گندهی بدون کلید لبهام را وا کنم کلید که گم می شود برای باز کردن قفل تیزاب به کار می برند نمیخواهم مثل آن خواب توی اسید قوته ور شوم یادت هست آن اوایل من راستن تحویل نمیگری؟ من هم البته یک علف بچه بیشتر نبودم دختر بچه ای که دامن های می پوشید و مادرش همیشه دعواش می کرد که شرط گلگلیش پیداست و خیلی ولنگو باز می و خوبیت ندارد و حتی توی آن سن و سال عیب است. با دامن کوتاه می آمدم روبروی تو می نشستم و سر کوچکم را روی دست های کچکم حایل میکردم. کردم و دوزانو به تو خیره می شدم. پل کم نمی زدم تا کوچکترین حرکات تو را زیر نظر داشته باشم. نیما را از زمین بازی و تاپ و سرسرش میکشاندم ضد جنوبی پارک نیاوران تا برایم گلاب بگیرد و بتوانم بیایم توی سینه ی تو خالی تو بنشینم هنوز بلد نبودم چجوری با مجسمه ها حرف بزنم استاد نجات بود که بیشتر از زبان انگلیسی به ما رمز و رازهای شهری را یاد داد سیتیز دی بیست تا به حال دلت خواسته مثلا کف پای قول جلوه در پارک که جمشیدیه باشی دوست جان؟ آرزوی جای کس دیگری بودن خیلی آرزوی عجیبیست. خیلی اولش این آرزو را با عشق یکی می گیرن. من هم دوچار این اشتباه شدم. میخواستم جای حامد نجات باشم نه با حامد. فکرش را بکن. سر کلاس صداش را یک دفعه بالا می برد و تقریبا داد میزد. There is a city in your heart. Talk to her. و نمیدانست این جمله با صدایی مزاجی مثل من چه ها که نمی کند. دیگر همه چیز تمام شده. من دارم با آرامش خیال با تو حرف میزنم چند دقیقه دیگر بعد از چهار سال سامان قهرمان سابقم را میبینم. خدا کند قهرمانم مثل لانس آرمسترانگ به بتواند دوباره به زندگی برگردد این مچمند زرد لیمویی پلاستیکی روی مچم هم بازمانده همان دوران قهرمانی است لیو استرانگ دارد دیر می شود و نمیخواهم مثل شب پاساژ گلستان دیر کنم و دوباره سامان را بکارم ولی دلم نمیآید حالا حالا ها از پیشت بروم ولش کن دوستجن لوله لوله و دوستشن پولک پولک باشند برای فرصتی دیگر. همینجا میمانم و از نیما برایت میگویم. نیما که حالا برایم مثلان فعل انگلیسیست اسمش چه بود؟ Past پرفکت Continuous یعنی میشود این یک روز به فیوچر تنس تبدیل شود؟ یادم باشد هفته بعد این را از استاد نجات بپرسم. بابا آمد خانه و گفت باید برای یک مسافرت آماده بشویم گفت زیاد تو نمیکشد. حداکثر یک ماه. فرصت طلایی پیش آمده و بالاخره بعد از کلی دنگ و فنگ بودجه مستند طبیعت جنوب تصفیب شده است. مرکز مستند سازی صدا و سیما. از این بهتر نمی شود. هفته دیگر می رویم بندر خانه سازمانی و اتومبیل خدمت. آخ جان، گوشماهی، صدف، عروس دریایی، لنج مستند طبیعت جنوب هیچ وقت ساخته نشد و مثل بقیه نیمه بابا نیمه ماند. بیشتر از نیمه کاره. چون چیز بزرگی از دست رفت و محو نابود شد. انگاری هیچ وقت نبود. بندرماندنمان طولانی شد. چشم باز کردیم دیدیم دو سال است توی خانه سازمانی سیمای مرکز بندرباز خانه نشین هستیم و دلمان به تلویزیون شیخ های آنور آب خوش است. من و نیما زبان محلی را یاد گرفتیم و بابا پنجشنبهها ما را به پنجشنبه بازار میناب می برد. آفریقاییها و هندی ها و عربها گم میشویم لباسهای رنگارنگ های و بوی انواع ماهی ها و غذا تند توی دماغ دماغمان میپیچد. چشم باز کردیم دیدیم نیما دیگران نیمای عاشق پارک و مجسمه نیست. سیزده سالش بیشتر نیست اما یاقی شده. دیر میآید خانه به جان اینوان آن می پرد دعوا می و خونی مالی به خانه برمیگردد. نیمای عاشق تاب و سرسره حالا عاشق قلیان سفالی است. و دوزدکی با دوستهای محلی می روید قهوه بندر قدیمی. بی اجازه با قایق تندرو می روید قشم. آنجا چه کار می کند؟ فقط سیزده سالش است. مستند نیمه کاره می ماند و هیچ وقت دوباره از سر گرفته نمی شود. بابا می گوید دارن زیراو رو توی تهران می زند. مامان می گوید به خاطر نیما هم شده باید برگردیم. نیما دارد از دست می رود. این محلی های فلان فلان شده او را پاک وحشی کردند. پدر مستندساز و پسر بیسر و با. چی از این مستندتر؟ چی از این واقعی تر پدر؟ نیما سوار تاب که میشد شد هیچ کس نمی توانست پایینش بیاورد. هیچکس حق نداشت برای تاب خوردن حالش بدهد. خودم بلدم. آن بالا پاهام رو باز میکنم و توی برگشت جمعشان میکنم. نیما تاب، نیما سرسره، نیما خواهر کوچولود که همیشه از تو تقلید میکرد، حالا باید از چیه تو تقلید کند؟ همه چیز تقصیر بندر عباس بود. شاه عباس را نمی بخشم که بندر را از چنگ پرتغالی ها آزاد کرد. نیما یه سیزده سالم با کیها برخورده بود. بندر عباس بود که تهران را از سر نیما پراند کسی نمیداند ما هم نمیدانیم نیما کجاست ولی حتما جایی همان طرفاست سواحل نیلگون خلیج و همیشه فارس ها بیایید این بندر ارزانی شما نیما را در عوض به ما پس بدهید جزیره قشم تازه منطقه آزاد شده بود هر چه میخواستی آنجا پیدا میشد. نیما جی می شده و میرفت قش از همه جای ایران کاسه ریخته بود جا همه جور آدم. از روابط بینان المل فقط آدم های ناتش به ما رسیده بود. خارجیها میآدند و میرفتند پدر مستند ساز توی جنگل های دنبال طبیعت ناب میگشت و طبیعت ناب داشت پسرش را ازش میگر پدر خودش را به فراموشی زده بود و مادر به ناخوشی ناخوشی و فراموشی دروی سکه قطع امید از نیما بودند. ما دوباره برگشت خوردیم تهران. با قفسه سیاه و سوزن سوزن توی سینه که احتمالا شکل قریب به حسه از دست دادن بود. شهرک اکباتان قرار بود آرامش را به خانواده نارام مبرگرداند. اما نیما شهرک را هم یک بندرگاه می دید. اینجا هم پرتغالی پیدا نمی شد. شاه عباس خیلی وقت پیش مرده بود. میگویند از بالا که به ساختمان های اکباتان نگاه کنی نوشته جاوید شا. دروغ است. چرند و پرند است. این ساختمان از بالا هیچ چیز نیستند. خودم نخشه اکباتان را رو رو روی دیوار بونگاه های املاک دیدم. هیچ شاهی به آنجا نیامده که احیانم جاوید هم بشود. بدیش همین است. نیما بدتر از بندر می شود. مشروب خور. دختر باز. شر و شور چه دست گلی تحویل جامعه داده ای بابا هنوز منتظریم مستند شاهکارت را از طبیعت جنوب بسازی مرکز مستندسازی سازی صدا و سیما از تو قدردانی خواهد کرد فقط کافی زندگی خودت را صادقانه در فیلم نشان بدهی نظرت در مورد یک مستند داستانی چیست؟ فیلم نامش با من عمران می خوانم، اما به لطف دختر تو بودن سینما با من عجین شده سینما حقیقت بهبه. سینمای معناگرا هم. چه بهتر دختر دانشگاه تهرانیت جور پسرت را میکشد بابا تو کجا اشتباه کردی آدم عاشق طبیعت طبیعت به تو نارو زد. از طبیعت بدم میآید. میخواهم مهندس عمران بشوم تا محیط زیست را نابود کنم. میروم و بزرگترین آفشور بتنی تونی را در سواحل خلیج میسازم تا اکوسیستم حسابی قراش میش بشود و به هم بخورد و همه جانداران دریایی بمیرند. نهنگها بمیرند و روزنامه ها علکی بنویسند نهنگها هم خودکشی میکنند. ولی کار کار آفشور به من باشد. شاهکار سازهی من. چرا فقط جنوب؟ توی جنگل های شمال ویلا می سازم و برای هر ویلا هزار تا درخت قطع می‌کنم. گور پدر اکوسیستم و طبیعت بکر و گونه های نادر جانوری. نیمای من، دادش سابقاً معصوم من، حالا معلوم نیست کجاست. نیمایم گم شده است. از خانه خارج شده و تا کنون مراجعت نکرده است. نامبرده دارای اختلال حواس است. اختلال حواس خانوادگی. مثل باباش حواس پرت است و همهاش یادش می رود پدر و مادر و خواهر و دوست آشنا یعنی چه. خود حافظ دوست جان دیگ سرت را حسابی در داورد. من که جز پارک و شما دوست ها کس دیگری را ندارم. سلامت را به دوست های سگانه یه فرهنگ یه نیاوران می سبیلو از نیمرو خیلی شبیه حامد بهداد است. وقتی که بیل میگذرد چی شد که من دوباره به سامان زنگ زدم؟ دیروز خودم را زدم به سرماخوردگی و نرفتم دانشگاه ترم تازه شروع شده است مامان که این چیزها سرش نمی شود و چیزی نمیگوید بعد از نهار تا ساعت چهار توی رخت خواب بودم خوابم برده بود و دوباره خواب دریاچهی اسیدی دیده بودم. زنی با لباس و کلاه شنای یک دست سیاه توی دریاچهی از اسید سولفوریک شنا میکند. بوی تند اسید سولفوریک را که در آزمایشگاه شیمی به دماغم خورده بود توی خواب احساس می کردم. دریاچه قلغل میزد. دهان زن را با چسب پهن پن بسته بودند. زن فقط می توانست با دماغش نفس بکشد اما بالای در لبریز از اسید کو اکسیژن زن سعی می کرد مثل یک شاه ماهی آرام و اقواگر شنا کند دلش میخواست اسید زودتر چسب دهانش را در خودش حل کند تا بتواند داد بزند نه اینکه بخواهد نفس بکشد داد بزند داد کشیدن گاهی از نفس کشیدن هم واجب تر است این را توی چشم های زن خاند. زن فکر مزهکی به سراغش آمده بود. از این فکرهای علمی. اسید سلفوری کلال خوبی برای چسب شیشهی است یا نه؟ پیه چشند است. از روی تختخواب خواب بلند شدم. گرمکان ورزشیم را پوشیدم و روسری سفیدم را چریکی بستم و کلاه پشمیم را روی روسری کشیدم و بلند داد زدم. مامان من میروم پارک پارکی بدوم مگر تو سرما نخورده بودی؟ نه دروغ گفتم. موبایلم را توی جیب گرم کنم گذاشتم. توی پارک پرنده پر نمی زند. اگر باشگاه تیراندازی باز باشد بروم آنجا. کارت عضویت همراه هم بود. باشگاه بسته بود. بید مجنون ها را با عره و کرده بودند و سرشاخه هاشان را با زنگ آهن رنگ زده بودند. من سر در نمی آوردم چرا؟ بید مجنون و زنگ آهن، کلاه پشمی، روسری، آیپاد، پینک فلوید، ایستادم. دیگر نمی خواستم بدمم. موبایل را از جیب گرم کن بیرون آوردم و شماره سامان را با تردید و ترس گرفتم. گوشی را بر می دارد. اگر برداشت طوری حرف می زنم که انگار گوشی را برداشت دهنش غیرعادی بود چرا نفس نفس می زنی؟ ببین من سرم نمی شود فردا حتما وقتت را آزاد می کنی و ساعت هفت می آیی نیاوران کاری نداری؟ خدا حافظه قد کردن سامان اسمس داد فقط مثل گلستان نشود. گل؟ نوشتم. گل مردانه که نه. گل زنانه. شایدم دخترانه. نوشت. ما که دادیم دل و دیده به توفان بلا. نوشتم. فکر کردی نده کم می آورد؟ گو بیا سیل قم و خانه ز بنیاد ببر. خودم خوشم آمد از اینکه اتفاقی مصرای دومش را بلد بودم. حضرت حافظ جان در یک امداد غیبی سریعا خودش را به محل حادثه رسانده بود و نگذاشته بود آبرون برود. نوشتم پس قرار من همان سیل غم یعنی فرهنگ سرا ساعت هفت دیر نکنی. سامان نباید دیر بیاید. ولی من اگر زود برسم تقویم به هم می ریزد. حالا ده دقیقه به هفت است و من باید قبل از کافه سری هم به شهر کتاب کوچک پایین پارک بزنم. دستخالی که نمی‌شود رفت پیش قهرمان. از ارض خیابان با عجله رد می‌شوم. برمیگردم و از این ور خیابان دوست‌جان تیغ‌تیغی را دید میزنم. بورس از راه دور. یاد شب هتل البرز می‌افتادم که با حامد رفتیم روی سکوهای کنار نرده های باغ مجسمه نشستیم. دوستجانهای انتظاییم را تماشا کردیم و با هم حرف زدیم. من به حامد گفتم از خیلی وقت پیش سامان را می شنسم. قصه آشنایی یک طرف با سامان را برای حامد تعریف کردم. ته دلم خوشحال بودم که توانستم حامد را شگفت زده کنم. تا آن وقت فقط حامد من را شگفت زده کرده بود. من باید تعادل را به دوستی من برمی گرداندم. تا حامد یک وقت فکر نکند سامان را بار اول در مهمانی شب یلدا دیدم و مثلا سر میز مافیا نگاهمان با هم تلاقی کرده. قدمت این نگاه از طرف من به خیلی وقت پیش بر برمیگردد. بازگشت قهرمان. خوشحال بودم که پیش بینی ناپذیر بودم. حامد هم مثل من احساس می کرد شب عجیبی است. شب راز. نیم ساعت پیشش فهمیده بود من هم یکی از آن رادیوهای سری دارم و حرفایی هم برای گفتن رادیوها می توانن گاهی وقتها آدمها را قافل گیر کنند باغ مجسمه ده پانزده دقیقه بیشتر طول نکشیده بود من و حامد دوباره سوار شولت شده بودیم حامد من را رسان پارک پرنس و موقع خدافزی سرشانه ام را بوسید